بسم الله الرحمن الرحیم قصه زهر جمعه یکی بود، یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود در روزگاران گذشته در روستایی اربابی زندگی می ارباب وضعش حسابی رو به راه بود و زمینهای زیادی داشت و اما از اونجایی که در اون روستا کار و کسب زیادی نبود ادده ای از مردم به ناچار و از روی اجبار برای اون ارباب زورگو کار می که از جمله اونها هم یه پسر نوجوون بود بله ارباب ستمگر و ناخونخشک از صبح کله سحر تا غروب خورشید از اون پسر بیچاره کار می‌کشید ولی شب آخر هفته به جای مزد اون همه کار یه مواجب کم و یه سفره نون خشک به دستش می‌داد و او رو رونه‌ی می می‌کرد پسرک بیچاره هم به سبب نیاز و بدون هیچ گله و شکایتی نونها و اون پول کم رو به خونه می‌آورد و با مادرش از اون استفاده می‌کرد باری شبی از شب‌های خدا پسر طبق معمول آخر هر هفته با مواجب اندک و سفره نون خشکی که ارباب انصاف بهش داده بود راهی خونشون شد پسر نوجوون همینجور با خودش حرف میزد و پیش میرفت که یه دفعه پسر ارباب که از گردش و بازی برمیگشت او رو دید و باهاش سرگرم شوخی کردن شد پسر ارباب که چند سالی از نوجوون کارگر کوچیک‌تر بود همراه او راه افتاد و قه قه زنان و جست و خیز کنان به خونه اونها رفت. و اما جونم براتون بگه مادر پسر نوجوون هر بار که اون اونها رو به خونه می آورد با آب مقداری از اونها رو نم میزد تا کمی خیست بخورن و قابل خوردن بشن. اما اون شب پسرک از بس گرسنه نبود منتظر نرم شدن اونها نشد و با دستای لرزون تون تون شروع به خوردن اونها کرد. ولی هنوز چند لغمه ای نخورده بود که یه دفعه صدای شکستن یکی از دندونهاش بلند شد و خون دهنش رو پر کرد بعدم پسر بیچاره از درد به خودش پیچید و با صدای بلند شروع به گریه و ناله کرد و اما با بلند شدن صدای گریه و زاری پسر نوجوون پسر عربا با شیطنت به هوا پرید و شروع به خندیدن کرد در واقع او به همون شدتی می خندید که پسر نوجوون می نالید پیرزن با دیدن این حال و وز به کنار پسرش رفت و سرگرم رسیدگی و دلداری دادن به او شد. این در حالی بود که پسر عرباب همچنان میخندید و شادی میکرد. پیرزن چند دقیقهی مراعات حال پسر ارباب رو کرد و بهش چیزی نگفت. ولی وقتی دید او مسخرگی رو از حد گذرونده طاقت از کف داد و گفت ای پسر جون دیگه بسه دست از کارت بردار. آخه درست نیست وقتی کسی از درد میناله کس دیگه بهش بخنده. اما پسر ارباب بدون اینکه به روی خودش بیاره که چیزی شنیده همچنان به کار خودش ادامه داد. باری، مهمون مردم آزار یا همون پسر اونقدر به کارهای مسخر آمیزش ادامه داد که پسر رنجور پیرزن، کاسه صبرش لبریز شد و با هرس و ناراحتی همون تکه نون خشکی رو که دندونش رو شکسته بود از زمین برداشت و به طرف پسر ارباب پرتاب کرد. از غذا نون خشک که مثل یه تکه چوب شده بود به پیشونی پسر خورد و قسمتی از پوست او رو زخمی کرد و همین باعث شد تا باریکه از خون روی صورت پسر جاری بشه. و در این وقت بود که پسر پرورده ارباب مسخرگی رو کنار گذاشت و از جا بلند شد و در حالی که صدای گریه و نالش همه ی کوچه و محله رو پر کرده بود به طرف خونشون دوید. با رسیدن پسر به خونه، ارباب رنگ از رخسارش پرید و با دو دست بر سرش کوبید. بعدم در حالی که به خراشیدگی روی پیشونی پسرش چشم دوخته بود و آه و فقانش بلند بود پرسید: چی شده پسرم؟ بگو بدونم کی این بلا رو به سرت آورده بگو تا هر دمار از روزگارش در بیارم پسر همونجور جور که دستش رو پیشونیش بود و یک سر اشک میریخت و زاری می‌کرد گفت نوکرت بابا همون پسرک نوکر بله عزیزان و در اینجا بود که دنیا در برابر چشمان ارباب تیره و تار شد و بدون اینکه از ته و سر در بیاره و از علت و علل غذایه چیزی از پسرش بپرسه چند تا از نوکرهاش صدا کرد و اونها رو روونه خونه پیرزن کرد تا پسر نوجوان رو بگیرن و به نزدش بیارن و ما بشنوید از اون طرف که مادر و پسرش چه کار بله با بیرون رفتن پسر ارباب از خونه پیرزن او که حدس میزد ارباب بیکار نمیشینه و برای انتقام کشی کسانی را به سراغش میفرسته، بیدرنگ او را به انباری کهنه و متروکه خونش برد و زیر مقداری از کاههای قدیمی پنهون کرد. به این ترتیب نوکرهای ارباب با رسیدن به خونه و گشتن همه جا چیزی به دست نیاوردن و دست از پا دراستر پیش اربابشون رفتن و بهش خبر دادند که پسر نوجوان فراری شده. ارباب با شنیدن خبر از زور ناراحتی به خودش پیچید و آه سردی کشید و خاموش موند. او لحظاتی فکر کرد و زیر لب گفت اشکال نداره. بذار فرار کنه. ولی بلاخره میدونم باش شکار کنه. هر جور شده گیرش میارم و با یه نقشه حساب شده روزگارش رو سیاه میکنه. مدتی که از حکایت زخمی شدن پسر ارباب گذشت روزی او یکی از آدمهاش رو به خونه پیرزن فرستاد و براش پیغام داد که ای زن گذشته ها هرچی بوده گذشته حالا زخم پیشونی پسرم کاملا خوب شده و من به هیچ وچکینه ی از پسرت به ندارم پس بهش بگو همه چیز رو فراموش کنه و به سر کارش برگرده چون میدونم که تو به مواجب کار او نیاز داری البته دوستان ارباب به فرستادش سفارش کرد که تا میتونه از پیرزن دلجویی کنه و باهاش به مهربونی سخن بگه بله و به این ترتیب بود که پیرزن بیچاره دلش قرص شد و پسر رو از پناهگاه بیرون آورد و او رو روونه خونه ارباب کرد پسر نوجوون رفت و با خوشامدگویی ارباب شروع به کار کرد چند روزی از بازگشت پسر گذشت و اتفاقی نیفتاد تا اینکه در یکی از غروب ها سر نوجوون همون جور که سرگرم کار کردن در تپیله اسب های ارباب بود از زور خستگی در گوشه از استابل دراز به دراز افتاد و خوابش بود ارباب که در این چند روز مثل سایه به دنبال پسر بود وقتی از این حکایت بوبرد، فرصت رو مناسب دید و زود چند تا از نوکراش رو به سراغ نوجوان فرستاد تا بی سر و صدا او رو توی جوالی بندازن و در اون رو ببندن و به نزدش ببرن دستور اجرا شد و جوال حاوی پسر در برابر دیدگان ارباب قرار گرفت ارباب که مدتها منتظر چنین لحظه ای بود خدمتکارهاش رو مرخص کرد و بعد با مشت و لگد و هرچی که دستش بود به جون جوال افتاد و حالا نزن و کی بزن پسر که از زور ضربات ارباب خواب سنگین بیدار شده بود شروع به آه و ناله کرد ولی چیزی نگذشت که یه دفعه ضربه‌ای به سرش خورد و نالش رو در گلو خفه کرد بله نوجوان بیهوش شد اما ارباب به گمون اینکه او مرده نفس راحتی کشید و به فکر افتاد که قدری خستگی در کنه و بعد بلند شو و جنازه رو به جایی ببره و پنهون کنه با این فکر بود که پلکاشو رو هم گذاشت و به خواب عمیقی فرو رفت این در حالی بود که به خلاف تصور ارباب پسر نوجوون از دار دنیا نرفته بود و فقط بیهوش شده بود خلاصه پسر وقتی بهوش اومد و خروپوف های ارباب رو شنید به هر صورتی که بود خودش را از جوالی که توش بود بیرون کشید او باوتنی در دالود سر پای استاد و خواست که آروم آروم بره خونه شونو خودش رو از شر ارباب نجات بده. اما با خودش گفت نه سزاوار نیست تک سنگینی رو که به ناحق از ارباب بی خوردم بی جواب بگذاره. بعدشم فکری کرد و آروم و بی سر و صدا به اتاقی که قوطی داروی بیهوشی ارباب در اون بود و او جاش رو بلد بود رفت و مقداری از اون دارو رو برداشت و آورد و زیر بینی ارباب نگه داشت. بعدش هم که معلومه ارباب بیهوش شد و پسر ارباب بیهوش رو به جای خودش داخل جوال انداخت و چند تا از لباس های ارباب رو هم پوشید و خودش رو به شکل و شمایل او در آورد و به حیات رفت. باری نوجوان در تاریکی شب تو حیات ایستاد و در حالی که صداش رو به شکل صدای ارباب تغییر داده بود چند تا از خدمتکارها رو صدا کرد و اونها رو سر وقت جوال فرستاد و سفارش کرد که تا میتونن با چوب و چماق اون رو بکوبن خدمتکارها هم در تاریکی شب بدون اینکه تشخیص بدن اون اربابشونه یا نه دستورش رو اجرا کردن و به سراغ جوال رفتن ارباب از شدت ضرباتی که به وسیله نوکرای خودش نوشه جون کرده بود یک هفته در بستر افتاد او وقتی تونست روی پاهاش به ایسته بلند شد و یه خروس به عنوان هدیه برداشت و پیش قاضی که یکی از بستگانش بود رفت و قضیه رو اونجور که به نفعش تموم میشد برای او حکایت کرد قاضی بعد از شنیدن حرفهای ارباب ضمن دادن نشونی پسر نوجوان به یک معمور بهش گفت به در خانه اون پسر میری و بهش میگی باید 100 دینار جریمه بده یا اینکه یک سال بدون مزد و مواجب برای اربابش کار کنه بله عزیزان دستور اجرا شد و پسره هم که پولی برای پرداخت نداشت پذیرفت که یک سال به صورت مفت و مجانی برای ارباب کار کنه و اما ارباب که از پسرک زخم خورده بود این بار به جای اینکه اونو تو خونه که کارش راحت تر بود به کار بگیره به مزرعه فرستاد تا سختی بیشتری بکشه بله و پسر بیچاره از صبح کلی سهر تا غروب با یه غذای بخور و نمیر زیر آفتاب به داخت کار میکرد و عرق میریخ الگرز این وضع مدتی ادامه داشت تا اینکه روزی از روزها پسر نوجوان وقتی داشت زمین رو شخم میزد، نوک گاواهن به چیزی در زیر زمین گیر کرد و ها از رفتن باز موندند پسر با دیدن این واس کنجکاف شد و وقتی جای گیر کردن گاواهن رو کاوید یک کوزه پر از سکه های طلا پیدا کرد او که از این وضع حسابی خوشحال شده بود فوری کوزه را برداشت و به خونه برد و به مادر پیرش دا. بعدم یکی دوتا از اون سکه ها رو برداشت تا وقتی از کار روزانه فارغ شد بره و برای خودش لباسی نو بخره البته نوجوون قصه ما داشت اون روز عصر گاف ها رو تحویل ارباب بده و دیگه از فردا کار کردن برای او رو کنار بگذره. و با این نیت گاف ها رو از صحرا به خونه آورد و به استبل برد اما وقتی میخواست به دنبال کارش بره یه دفعه سکه ها از پر شالش که سوراخ شده بود رو زمین افتاد و جلو روی زن ارباب قرار گرفت چه درد سریتون بدم دوستان بعدم زن ارباب با چرب زبونی و نیرنگ تهوتوی قضیه رو در آورد و شب به شوهرش خبر داد ارباب با فهمیدن حکایت دست ها رو به هم مالید و لبخند موزیانه ای زد و گفت کارم گرفت میدونم چه کار کنم که اون گنج رو از چنگش در بیاره و با این فکر بود که همون شب ارباب پسرک رو به اتاق مخصوص خودش دعوت کرد و کنار دستش نشند و با چرب زبونی گفت می بینم پسر خیلی خوب و زحمت کشی هستی برای همین دوست دارم که پولدار بشی ارباب بعد از این حرف سکه‌ای به پسر داد و اضافه کرد حالا وقت مزاحه چطور هر کدوم از ما حکایتی بگیم و حکایت هر کدوم هم که عجیبتر و باور نکردنیتر بود اون یکی 100 سکه طلا برنده بشه نوجوان قصه ما که تا حدودی زیرک هم بود فکر کرد و گفت من موافقم ارباب اما تو باید این حرفت رو رو یه کاغذ بنویسی و مهرت رو هم زیر اون بزنی تا اگه یه وقت من شرط و بردم زیر قولت نزنی و همه چیز رو انکار نکنی ارباب که برد خودش رو حتمی میدونست فوری کاغذی نوشت و مهر کرد و به دست پسر داد پسر نوجوان وقتی کاغذ ارباب رو تو پرشالش گذاشت و خیالش راحت شد گفت خب ارباب من حاضرم تا حرف تو رو بشنوم. ارباب باودی به قبقب انداخت و صداش رو صاف کرد و گفت بله اینجور که من شنیدم پدر بزرگ من یه قاطر خیلی بزرگ داشته طوری که هیچ استبلی تو این دنیا یه بزرگ پیدا نمی شده که اون توش جا بشه اما تو طبقه هفتم آسمون استبلی بوده که پدر بزرگم مجبور می شده قاطرش رو در اونجا نگه داره با تمام شدن حرف ارباب پسر نوجوان شروع به صحبت کرد و گفت بله جناب ارباب اما خوبه بدونید که در همون روزگار پدر بزرگ خدا بیامرز مرز من یه روز پاشو گذاشته بود روی رنگین کمون و رفته بود بالای هفتمین طبقه آسمون و در اونجا استبلی اندازه یه وجب درست کرده بود که تو اون هرچی قاطر بزرگ تو این دنیا بوده نگه می داشته که قاطر پدر بزرگ تو هم یکی از اونها بوده ارباب وقتی که دید حکایتی که پسر نوجوون تعریف کرد خیلی عجیب تر و باور نکردنی تر از حکایت خودشه حسابی دمخ شد و شروع به جر و بحث با او کرد و به قول معروف بازی در آورد. پسر که دید بحث و جدل با ارباب فایدهی نداره از جاش بلند شد و راهی خونشون شد و فردا صبح اول وقت پیش قاضی رفت و حکایتش رو برای او تعریف کرد خلاصه کنم و درد سرتون ندم دوستان قاضی به دنبال ارباب فرستاد و او رو به محکمه خواست تا قضیه رو فیصله بده قاضی که خیشاوند ارباب بود شروع به صحبت کرد و از پسر خواست که رضایت بده و به دنبال کارش بره ولی پسر نوجوان که از پچ پچ های اون دو نفر فهمیده بود کاسه ای زیر نیم کاسه است کاغذی رو که ارباب مهر امضا کرده بود به قاضی نشون داد و از او خواست تا نگذاره حقش پایمال بشه البته پسر تهدید کرد که اگه قاضی این کار رو نکنه هر جور شده خودش رو به بارگاه حاکم شهر میرسونه و قضیه رو به اون میگه بله و در اینجا بود که ارباب و قاضی فهمیدن که هوا پسه و این پسر زرنگ تر از اونیه که اونها فکر می‌کردن بناچار قاضی برباب سفارش کرد که یه جوری پسر رو راضی کنه و سروتای قضیه رو هم بیاره. ارباب هم بناچار قبول کرد و تا فردا صبح مهلت خواست تا حق پسر رو بهش بده. بعدم به خونش اومد و پس از تعریف کردن حکایت برای زنش با خنده گفت پسر نادون گمون کرده میتونه از من پولی در بیاره. من اگه میخواستم به هر بی سروپایی مثل او باج بدم که دیگه ارباب نمیشدم بعد فکری کرد و گفت گوش کن زن فردا صبح وقتی اون پسره بیسر بی سر و پا برای گرفتن صد سکه به اینجا اومد بهش میگه ارباب مرد اون وقتی که او مجبور میشه دست از باده راستر به دنبال کارش بره و گورش رو گم کنه القصه دوستان فردا صبح اول وقت پسر جلو در خونه ارباب حاضر شد او که دیگه نمیخواست برای ارباب کار کنه و برای همین دل و جرعتی پیدا کرده بود داد زد آهای ارباب زود بیا ست تا سکه منو بده در این وقت زن ارباب جلو در حاضر شد و با قیافهای به ظاهر درهم و چشمانی اشکالود گفت چی میگی؟ از جون شوهرم چی میخوای؟ اون بیچاره دیشب وقتی اومد خونه از بس هرس خورد پس افتاد و بعدم نصفه های شب از این دنیا رفت آره اون بیچاره مرد و بعدم زد زیر گرگیه پسر که از طرز رفتار زن فهمیده بود کاسه زیر نیم کاسه است و مرگی در کار نیست قیافه ای غمگین به خودش گرفت و سری جام موند و گفت خدا رحمتش کنه بیچاره مثل اینکه دیروز بهش الهام شده بود که رفتنیه چون ازم عذر خواست و به هم کرد که اگه از دنیا رفت من بشورمش و بعد از این حرف معطل نکرد و تند وارد حیات شد و خودش رو به کنار ارباب که دراز به دراز روی یه تخت افتاده بود رسوند و مدتی علکی شروع به آه و ناله و زاری کرد بعدم به سراغ اجاق رفت و می روشن کرد و یه دیگه پر از آب روی اون گذاشت. از اون طرف زن ارباب تون تون از این اتاق به اون اتاق میرفت و با دست پاچگی دنبال راه می میگشت تا از دست پسر خلاص بشه که پسر نوجوان از فرصت استفاده کرد و دیگه آب داغ رو برداشت و روی ارباب ریخت. باب بخت برگشته که تمام بدنش آتیش گرفته بود یه دفعه از رو تخت جهید و نعرهای رعداساش تو حیات پیشید در این وقت زن ارباب از اتاق بیرون پرید و در حالی که با تعجب به پسرک خیره شده بود گفت چه خبره چه بلایی سر شوهرم آوردی پسر نوجوون لبخند معنیداری زد و گفت من کاریش نکردم فقط باعث شدم که اون دوباره زنده بشه پس میبینید که بهتون خدمت کرده و برای این کارم هم علاوه بر سد سکه قبلی صد سکه دیگه هم میخوام زن به شوهرش کمچنان از درد و سوزش تن ناله میکرد چشم غرهی رفت و سر به زیر انداخت. خلاصه کنم دوستان ارباب که دید با هیچ نیرنگی نمیتونه از دست پسرک راحت بشه چاره ایجز این ندید که دویست سکه رو به پسرک بده و از اون روز به بعدم کاری به کار او نداشته باشه بله و به این ترتیب ارباب سزای تمعکاری و حیلگری خودش رو دید